قسمت چهاردهم ام پادکست علف رو میشنوید. هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است. اگر این پادکست رو دوست دارید، شبکه‌های اجتماعی اون با آدرس الف پادکست رو دنبال کنید و اگر دوست دارید در تولید پادکست صحیم باشید، میتونید از طریق درگاه هامی باش یا پیپینگ میدنایت کاست که آدرسش در توضیحات اپیزود هست، به پادکست کمک مالی کنید. در این قسمت از پادکست نمایشنامه الکترا نوشته صفوکلیس یا صفوکلیس یا بعضی از اساتی توی ایران میگن سوفکل یکی از برجسته ترین نمایشنامه نویسان یونان رو براتون میخونم. اون در سال 496 پیش از میلاد به دنیا اومد و 90 سال هم زندگی کرد. پدرش شمشیرساز بود و در جنگ های ایران و یونان ثروت زیادی به دست آورده. و جمله معروفی در وجود داشته که میگفتند جنگ گرچه خانه یونانیان رو ویران کرده اما باعث شده خانه سوفوکلس آباد بشه. پدر سوفکل بعدها خزاندار آتن میشه و بعدش هم فرمانده نظامی. توی وقتای آزادش هم در مسابقات ورزشی و هنری شرکت میکرده که همیشه موفق بوده. سوفوکل نقش بسیار مهمی در تکوین تئاتر داشته و این هنر رو به چیزی که امروز ازش می‌شناسیم نزدیکتر کرده. مثلا در ابتدا سرودهای حماسی یونانی بدون حضور بازیگر و تنها با گروه همسرایان اجرا می شده. اما سوفوکلس سه بازیگر به اجرا اضافه میکنه و اولین فردیه که در نمایشنامه های خودش شخصیت خلق میکنه. در قسمت هفتم پادکست یعنی مدهعا خیلی کامل درباره گروه همسرایان حرف زدیم، ولی برای این قسمت کافیه بدونید گروه همسرایان شبیه گروه کور در موسیقی کلاسیک هستند با این تفاوت که در نمایش کنش هم دارند ولی خب توی موسیقی کلاسیک اینطور نیست. در این ترجمه از نمایشنامه الکترا از گروه همسرایان به عنوان زنان یاد شده که منم همون کلمه رو به کار میبرم. سوفوکلس 113 تا نمایشنامه نوشته که فقط 7 از اونها الان در دسترسه. و ما دقیقاً نمیدونیم این هفت نمایشنامه با چه ترتیبی نوشته شدن اما به هر حال این هفت نمایشنامه توسط محمد سعیدی به فارسی برگردونده شدن و ما هم نمایشنامه الکترا رو از روی ترجمه ایشون که توسط انتشارات علمی و فرهنگی چاپ شده روایت کردیم متن این قسمت رو امیر تهانی نوشته که من هم از اون و هم از انتشارات علمی و فرهنگی ممنونم پیش از پرداختن به خلاصه نمایشنامه نیازی که پیش زمینه ای رو درباره اتفاقات نمایشنامه بگم تا برامون قابل درکتر بشه. در ضمن، اینم بگم که اگر اسمی از اسامی آدم ها یا مکان ها توی نمایشنامه به غلط تلفظ شد حتما تذکر بدید و توی کامنت ها حال هر جایی که گوش می کنید یا توی سوشال مدیا برای ما بنویسید. اسم های اینطور نمایشنامه ها سختند و گاهی حتی پیدا کردن تلفظ درستش مشکله. ولی باز به هر حال من تمام تلاشم رو میکنم که درست و صحیح اسامی رو ادا کنم. بریم سراغ داستان پیش زمینه نمایشنامه الکترا. آگا ممنون و برادرش منالئوس با سپاه یونان به جنگ شهر تراوا میرند تا هلن همسر منالئوس رو که به منالئوس خیانت کرده و به اون شهر فرار کرده، دستگیر کنند و در ضمن از مردم شهر هم انتقام بگیرن. اینکه خیانت بوده واقعا یا نه توی روایت مختلف متفاوته و توی بعضی از منابع هم میگن نه این دوتا رفتن اونجا تا هلن رو نجات بدن و برگردونن نه اینکه بکشنش. برحال، قبل از اینکه از دماغه اولیس رد بشن کشتی اونها متوقف میشه و آگاممنون هم به ناچار، ایفیجنی دختر خودش رو به پیشگاه الهه آرتیمیس قربانی میکنه تا آرتمیس باد موافق بفرسته، که اونها بتونن به سلامت از اون منطقه رد بشن خلاصه که به تراوا میرسن و بعد از ده سال جنگ آگاممنون فاتحانه به خونه برمیگرده بیخبر خبر از اینکه همسرش کلیتیمنسرا و ایجستوس علاوه بر این که بهش خیانت کردن تصمیم به قتل آگاممنون هم گرفتن و اینطوری میشه که آگاممنون در خانه خودش توسط ایجستوس و همسرش کشته میشه و اتفاقات نمایشنامه پیرامون همین ماجرا شکل میگیره یه نکته که قبل از شروع نمایشنامه باید بدونیم اینه که در نمایشنامه دو بار اسم پیلوپاس آورده میشه پیلوپاس پسر تانتالوس قصد ازدواج با هیپودامیا دختر اینوماوس رو میکنه اسم خیلی مهم نیستن همون پیلوپاس رو یادتون باشه کافیه به هر حال شرایط داماد اون خانواده شدن هم بردن مسابقه ارابرانی این پیلوپاس خبیس هم به یه بابایی رشوه میده تا عرابه شاه رو دستکاری کنه و شاه تو مسابقه کشته میشه. خود پیلوپاس هم با عرابه های بالداری که از پسیدون گرفته بود برنده مسابقه میشه و تمام. بعد از مسابقه هم میره با همون هیپودامیا که عاشق شده بود ازدواج میکنه و شاه میشه. بعدش به جای اینکه از اون کسی که بهش رشوه داده بود قدردانی بکنه سرش رو زیر آب میکنه و طرف هم نفرینش میکنه اون اشاره ای که در نمایش نامه به نفرین و داستان پیلوپاس میشه برمیگرده به همین ماجرا باز باید تاکید کنم که در مورد همین خلاصه خیلی کوتاهی که از این داستان تعریف کردم روایت های متفاوتی در منابع مختلف موجوده که اگر دوست داشته باشید میتونید بری جای مختلف بخونید یا اینکه از پادکست هایی که به صورت تخصصی به اساطیر میپردازن گوش کنید و آخرین نکته این که اوریپید هم نمایشنامی به نام الکترا داره که البته داستان نسبتاً متفاوتی از این شخصیت رو روایت کرده که خب من در قسمت هفتم فصل اول نمایشنامی مدآ رو از همین آیه اوریپید براتون خوندم و حالا برای اینکه هم تنوع داشته باشیم و هم با سوفوکلس آشنا بشیم تصمیم بر شد که روایت سوفوکلس از الکترا رو براتون بخونم ولی به هر حال اینو بدونید که یک نسخه از الکترا هم به قلم اوریپید موجوده البته در پایان براتون از تفاوت‌های الکترا نسخه اوریپید و سوفوکلس و طرز فکر متفاوت سوفوکلس با اوریپید بیشتر خواهم گفت هر سوال یا شوپی براتون پیش اومد که به نظرتون من میتونستم جواب بدم میتونید جای مختلف که میشه پادکست رو پیدا کرد ازم سوال کنید تا حتما چه با اطلاعات خودم چه با تحقیق و پرسجو جوابتون رو بدم بریم سراغ قسمت 14 الکترا اثر صوفوکلس. خیلی ها توصیه میکنند یاد گرفتن یه ساز برای هر آدمی لازمه این جمله رو جاهای مختلف زیاد خوندیم و شنیدیم ولی همیشه یا وقتش رو نداشتیم یا حوصله‌اش رو نداشتیم یا به هر دلیل دیگه‌ای دنبالش نرفتیم اسپانسر این اپیزود پادکست تالف خونیاگره. خونیاگر یه استودیوی ساخت فیلم‌های آموزشی موسیقی توسط اساتید نام و با تجربه است. تو خونیاگر فیلم‌های آموزشی سازهای مختلف ایرانی و جهانی از ستار و تار گرفته تا هاندرام و سازدهنی پیدا میشه. علاوه بر این میتونید علم موسیقی و آواز رو هم از خونیاگر یاد بگیرید. اینترنت مصرفی خونیاگر برای آموزش های آنلاینش نیم هاست و به صورت اقساطی هم میتونید آموزش ها رو تهیه کنید. اگر مشکلی داشته باشید یا سوالی هم براتون پیش بیاد سایت خونیاگر مستقیما شما رو به استادتون وصل میکنه. لینک سایت و اینستاگرام خونیاگر رو در توضیحات پادکست قرار میدم. خونیاگر آموزش های تصویری موسیقی Μ.com μονάχει πολέβεις γενέ ηλέκτρα με φξέβιια και σάτη να ηδόγωνά μονάχει παδέβεις και έ μεσέια στο δία καισάτι να ηδόνα θρνή του γωνιούσου των οφό در برابر کاخی شاهانه در نزدیکی شهر آرگوس، سه مرد ایستادند که آنها در اندیشه پیریزی نقشهی هستند و در میان آنان مردی جهان دیده چون راهنمایی شهر را برای یارانش توصیف می کند او مربی اورستس است. او می گوید ای پسر آگاممنون ممنون، ای پسر سردار بزرگ یونانیان در جنگ تراوا. آنچه همینک بدان مینگری است که پیش از این در خوابها. و در آرزوهایت می جستی، نام این شهر آرگوس است و آن میدان را نیز لیسیه می‌نامند و آن معبد که در سمت چپ خود می‌بینی معبد مشهور هراست ما همکنون در ولایت میسینه مشهور به گنجینه زر هستیم و این خانه از آن خانواده پیلوپاس است که به راستی باید آن را سرای مرگ بنامند سرایی که پدرت را در آن کشتند من نیز به دستور خواهرت تو را از این خانه به شهر دیگر بردم تا چنین ببالی و داد از کشندگان پدرت بستانی ای اورستس و ای دوست یگانه ما پیلادس اکنون که خورشید به انبار زرینش از پس شب برآمده است پیش از رفت و آمد مردم در شهر باید در درانچه به آنان میگوییم هم سخن شویم به یاد داشته باشید که اینک راهی برای بازگشت نیست اورستس به مربی خود میگوید ای یار دیرینه من نیک میدانم که جز سخن راست بر زبان تو نمی رود. و تو نیز میدانی که من هیچگاه دوستانم را در سختی ها تنها نمیگذارم. از تو میخواهم که نخوست رای مرا بشنوی و سپس آن را نیک بسنجی من از قیبگوی پسیا چگونگی کیفر قاتلان پدرم را جویا شدم او نیز به من گفت که باید هیچ سلاحی و تنها با چارجوی جهان را پیش چشمانشان تاریک کنم بنابراین از تو میخواهم که به درون خانه بروی بیگمان، تو را که اینک گرد پیری بر سرت نشسته است کسی نخواهد شناخت و درباره من برای آنان داستانی بپرداز پرداز که به گوش آنان خوش بیاید میگویی از دیار متحدشان پانتوس آمده ای و خبر مرگ اورستس را در مسابقات پهلوانی پسیا آورده من و پیلادس چنان که گفت به مزار پدر خواهیم رفت و من رشته از مویم را نصار مزار خواهم کرد سپس با ظرفی مفرقین به کاخ می رویم و به آنان خواهیم گفت که خاکستر اورستس را آورده ایم. شاید گمان بری که خود را مورد نمایاندن برای کام سزاوار نیست اما من بر این باورم هر کاری که سرانجام آنپی روزی باشد شایسته است من آوازه بزرگانی را شنیدم که نخست همگان آنان را مرده می اما چون بر نام خیش را بیش از پیش ارجمن ساختند سپس اورستس از خدایان برای انجام نقشه‌های خود یاری می‌خواهد و رو به مربی خود می‌گوید اینک زمان عمل فرا رسیده است و زمان بهترین داور برای سنجش آدمی است در این هنگام صدای افسوس‌ها و ناله‌های زنی را از درون کاخ می‌شنوند مربی می‌گوید به گمانم صدای کنیزی است و اورستس میگوید شاید صدای الکترا باشد بهتر نیست اندکی بیشتر صبر کنیم مربی درخواست اورستس را رد میکند و از او میخواهد فرمان آپولون را اجرا کند و نخست بر مزار پدرش آگاممنون برود و امیدوار است بدین شیوه به موفقیت دست یابند <تصفيق> με στοργή των γωνιών τους τα στερνά αγκαλιάζουν γιατί να μην τους μιαζούμε και εμείς γιατί να μην τους μιαζούμε και εμείς γιατί αφού τα σοφά φτερωτά τουρανού του αυτούς που τους ανάθρεψαν με κο κό, με κοπο τιμού Γιατί να μην τους μοιάζουμε κι εμείς Γιατί να μην τους μοιάζουμε και εμείς <Συρίζει> Ανθρώπινη φύμη που φτάνεις βαθιά ως το μήμα Βγάλε φωνή τριμπερί στους ατρίδες Πως βόσκει διχόνια στα σπίτια τους μέσα αρρώστια καρδιά اما آنکه چنین مینالد و فغانسر می دهد الکتراست الکترا از کاخ خارج می شود و اندوهگین و افسرده با خود می گوید هر بامداد که سیاهی شب به دست روشنایی روز زبون می شود من اینجا نشسته مرسی سرای رنجهای خیشم و از درد سینه خود را میخراشم، و روز را از درد هجر پدر با دیده اشبار به شب میبرم پدرم در نبردهای بسیاری شمشیر زد و مرگ بر او چیره نشد اما در اینجا در خانه خود ایجستوس با مادرم هم داستان شد و با تبری سر او را شگافت ای پدر سوگوار تو تنها منم و تا زمانی که دیدگانم یارای دیدن داشته باشد و زبانم توان گفتن برای تو خواهم گریست و سوگ تو را سر خواهم داد تا جهان را از ستمی که بر تو رفته است آگاه کنم. ای خدایان خشم و عذاب، سخنم را بشنوید و به یاریم بشتابید و با بازگرداندن برادرم از قاتلان پدرم انتقام بگیرید که من تنها و توحیده است درمانده و ناتوانم. زنان به پیش او میآیند و به او میگویند ای الکترای نگون بخت که مادرت گناهی کشتن پدر را برگردن دارد درود خدایان بر تو باد و نفرین خدایان بر زجر دهندگانت الکترا از زنان سپاسگزاری میکند و میگوید گرچه میداند که آنان برای التیام او به اینجا آمدند اما او را جز ازای پدر چاره ای نیست زنان به الکترا میگویند در سوگ هر روزه او سودی نیست و رنجهای دیرین با عشقهای بسیار پاک نمی شوند و از او میپرسند از چه رو به مویه های خیش پایان نمی دهد. الکترا به زنان پاسخ می دهد. تنها دیوانگان مرگ دلخراش پدر را از یاد می برد و من آین و آه را برگزیدم. زنان از خواهران الکترا خریستوف میس و آیفیاناسا یاد می کنند و به الکترا می گویند تو در این رنج تنها نیستی به خواهرانت بنگر که چون تو شیون نمی‌کنند و از برادرت نیز نشانی نیست نمی‌توان دانست که چگونه اندوه خود را تاب می‌آورد شاید همینک امید دارد که میراث پدری را باز پس گیرد الکترا با شنیدن نام برادرش آشفته می‌شود و به زنان می‌گوید در روزهایی که مرا نه فرزندیست و نه شوهری تنها به یاری برادرم دل بستم. اما می حراسم که شاید او همه رنجها را از یاد برده باشد پیکی میانه ماست و از او نیز خبری نیست میدانم که در اندیشه انتقام است اما جرأت آن را ندارد زنان از الکترا میخواهند که ناامید نباشد و از خدایان یاری بخواهد زیرا خدای آسمان همه چیز را میبیند و بر همه چیز دست دارد و میافزایند که نباید پیش از این برزاری زاری خود بیافزاید که گردش روزگار مرهم درد آدمی است الکترا از روزگار خود میگوید که در سرای پدر چون است و جام و خوراکش به مانند بینوایان است زنان به الکترا میگویند گویند انگاه که آز دیده گمراهان را فرو بست و تیغ بران به دستشان داد تا بر سر پدرت فرو دارند به ناچار پلیدی آشکار شد و هرچه بود گذشت خواه به دست آدمی و خواه به دست خدایان الکترا با یادآوری آن روز شوم گویی از جرفای نهاد خود آهی برمی آورد و می گوید از آن شبی که خون پدرم به دست آنان بر زمین ریخت دیگر خورشیدی در زندگی هم سر بر نی آورده و تیرگی رخت بر ننبسته است و من در خانه خود در بندم. و سپس نالان از خدایان می خواهد که آن دو تن را کیفر کنند زنان به الکترا اندرز می دهند و می گویند در روزگار چیرگی دشمن و نیرومندیش رای خرد دوری از ستیز جویست. الکترا پاسخ میدهد، آری، اما پس از آن سختی ها انان خیش از کف دادم. برای همین تا جان در بدن دارم چنین زار و درمانده خواهم بود. ای زنان، بیش از این برای تسلی من نکوشید که کار من از دست شده. زنان، باز هم به الکترا زنهار میدهند که آتش آلامش را بیش از این شوله نسازد. الکترا به زنان میگوید گوید سرشت طبیعت مرا باز می دارد که مرگ پدرم را از یاد به راستی در روزگار انسان بیفضیلت مردگان برای انسان آرامگاهی بیش نیستند و خون با خون قصاص نمی شود. زنان از اینکه که نمی توانند الکترا را التیام بخشند، اندوهگین می شوند اما به او میگویند که آماده یاری او هستند الکترا به خاطر اندوه چاره ناپذیرش از زنان پوزش میخواهد اما میگوید که بی‌تخصیر است و سپس میافزاید که آیا سزاست من که از خاندانی نجادم چشم بر رخدادهای پیرامونم فرو بندم مادرم مرا به دیده تنفر مینگرد و من نیز از او منزجرم حالا ببینید که من چگونه به ایجستوس مینگرم در حالی که رخت پدر را بر دارد و بر تخت پدر می نشیند و برای خداگان در قتلگاه او نصار می کند و در بستر مادرم می خوابد. حالان که پدرم با خاک هم آغوش است و این از همه چیز برایم ناگوارتر است که مادرم از گناه دهشتناک خود دم بر نمیآورد و سزای خیانتش حراسی در دل ندارد من نیز نهانی بر این همه می زیرا اگر آشکارش بریزم مادرم در و اندوه مرا به ریشخند میگیرد و آرزو می کند که مرگ قمهایم را پایان دهد و زمانی که خبری از اورستس به گوش او رسد خشمگین شده و ناسزاگویان به من میگوید هر آسیبی که از اورستس به من رسد گناه آن به گردن توست که او را رهاندی و ایجستوس با فرومایگی در پشت او پنهان شده و با او همسخن می شود من میاندیشم که اورستس خواهد آمد و این دوران را پایان خواهد داد اما روز از پی روز میآید و از امیدم میکاهد حال داور شماید بگویید که چگونه میتوان بر این رنج شیره شد زنان پس از آنکه با پرسش از الکترا میفهمند ایج سسترخانه نیست از او میخواهند که خبری از برادرش به آنان بدهد الکترا به زنان میگوید که برادرم هر بار با من پیمان آمدن میبندد اما باز آن را میشکند گویی شهامت آن را ندارد زنان به الکترا میگویند مردان برای انجام چنین کار سهمگینی مردد میشوند الکترا با این حرف زنان بر و با آنان می پس من چگونه در رهاندن او درنگ نکردم؟ زنان به الکترا برای آمدن برادرش امید میدهند و الکترا می این امید تنها دلیل زندگیش است. در اینجا زنان الکترا را متوجه آمدن خواهرش خریستوفمیس می کنند که با نسارهایی در دست از کاخ خارج می و به سوی آنان می‌آید. خریستوفمیس به الکترا می چرا دیگر بار چنین افسرده و نالانی؟ چرا از من نمی آموزی که با این همه درد در سینه دم بر نمیآورم؟ آورم؟ که تو در زاری خود برحقی، اما چون بر پیرامونت بنگری، میفهمی فهمی آن است که این قم خود را در نهان خود پنهان سازی. من نیز برای آزادی هم سرفرود آوردم. الکترا خشمگین می شود و به او می گوید تو اگر دختر پدرت هستی باید شرمسار باشی که او را از یاد ی آنچه تو میگویی؟ نه از تو بلکه آموزه های مادر است. اینک تنها دو راه برای تو پیداست. رها کردن این زن و پیوستن به یارانت یا پیروی از او و تنها گذاشتن یارانت. تو گفتی اگر یارای آشکار کردن درونت را داشتی ستم رفته بر سر ما را سر میدادی. اما همینک که من میکوشم چنین کنم مرا یاری نمی کنی. اینک که ما به جایگاه کنیزی فرو افتاده ایم نباید به کمدلی و سستی نیز شناخته شویم. شادی من در این زندگی آزار زندانبانم است و آنچه تو به آن دل خوش کرده ای به کار من نمی آید. تو می توانی چنین خود را بفریبی و پند مادر فرومایت را بپذیری. اما من خود را فرزند پدری آزاده و ارجمند می دانم. زنان از آن دو می این مجادله را پایان دهند. خریستوفمیس می گوید من از گفتگوهای نهانی آنها آگاهم و می دانم خواهرم را سزایی سخت در پی است و همه اندیشم رهایی اوست. الکترا می گوید از این بیشتر چه عذابی در سر دارند که بر سر من فرو دارند. و خریستوف میز پاسخ می دهد می تو را در دخمهای تیره و تنگ زندانی کنند که تا پایان زندگیت آن سوگواری کنی و سپس از او می خواهد تا وقت باقی است، تسلیم فرمان آنها شود الکترا از او میپرسد، آیا در این تصمیم مسمم هستند و خریستوفمیس تایید می کند و می گوید پس از بازگشت ایجستوس آن را اجرایی می کنند. پس از این سخن آتش خشم الکترا شراره می کشد و آرزو می کند ایجستوس زودتر بیاید خریستوفمیس بارها از او می خواهد که به شیوهی اندیشه کند. و دست از و وزاری بشوید اما الکترا به او میگوید زندگی چون او سرسپردگی است و یاد پدر را به زندگی در بندگی نمیفروشد خریستوفمیس ناامید از تأثیر بر خواهرش قصد رفتن میکند که ناگهان الکترا متوجه نظریهای در دست او میشود و از او میپرسد به کجا میرود و او پاسخ میدهد که مادر نسارهایی به دست او داده که بر مزار پدر ببرد. الکترا متحیر می شود و از خواهرش می پرسد چگونه شخصی بر دشمن خود نسار می کند و خریستوفمیس دلیلش را خواب حولناک مادرش می داند که الکترا شادمان می شود و خواب را ندای خدایان می داند و از خواهرش می خواهد که خواب را تعریف کند. خریستوف میس که از شادمانی الکترا متعجب شده میگوید به راستی که نمیداند او چه خوابی دیده است اما الکترا پافشاری میکند و خریستوف میز بران میشود که آنچه چه میداند بازگویت و این گونه آغاز میکند او پدرم را در خواب دیده است که عصای پادشاهی خود را که همکنون در دست ایجسوس است در پای معبد فرو میبرد و از عصا درختی سر میآورد چنان تنومن که شاخ و برگش بر ولایت میسینه سایه می و سپس می افضاید که هرچه از خواب میدانم همین است و خود نیز آن را از زبان کس دیگری شنیدم که راز و نیاز مادرم با الهی آفتاب را در باب خوابش به یاد سپرده است مادر پس از خواب دلش پر از حراس شد و مرا چنین گفت که نصارهایی به مزار پدرم ببرم تونیز پندهای من بشنو و خود را خیره در خطر می انداز. الکترا می گوید ای خواهر، حال تو سخنان مرا بشنو. این نصارها را نه به مزار پدر بلکه به دور دستها بر و در زیر خاک مدفون کن. زیرا زیبنده تر است که ازان گور این زنه شوم شود. کدام زنی برای کشته خود که همان شوهر اوست نصار می کند و کدام مرده این نصار کشندش را میپذیرد. این پیشکشها تیغ آلوده به خون را نمی شوید. ای خواهر، به جای این نصار ها رشته ای از موی خود برگیر و به رشته ای از موی من بیافزا و این کمربند کمبه ها را نیز و نصار مزار پدر کن و از او بخواه که یاور ما در انتقام از مادر باشد. بیگمان خواب او پیک پدر است. آری چنین کن به امید آن که روزی نسارهایی گرانبها به آرامگاهش ببریم. زنان از خریستوف میس میخواهند گفته های را عملی کند. خریستوف میس میپذیرد و از زنان میخواهد راز او را فاش نکنند. زیرا با آگاهی مادرش از این راز از کرده خود پشیمان خواهد شد و سپس به سمت مزار پدر میرود. و از آنجا خارج می شود. زنان میگویند ما بر این گمانیم که این خواب ندای خدایان است و رستگاری نزدیک. آن دشنه شومی که به خونی آغشته شد به خونی دیگر تشنه است. کسی که با قاتل شوهرش هم بستر می شود و آین سرزمین را فرو می نهد سزای او مرگ است و اگر خواب چنین تعبیر نشود باور مردمان به نشانه های آسمانی برخواهد گشت. گردش روزگار را بنگر که از گردش چرخ عرابه پیلوپاس چه ناگواری ها بر سر خاندان فرود آمده است. کلی تیم مادر الکترا به پیش او میآید و بر سرش بانگ بر می آورد الکترا، اینجا چنین می کنی؟ باز چون ایجستوس از خانه رفته خیره سر شده ای به اینجا آمده ای و فقان سرداده و مرا هم گرمی نامی؟ حال بشنو که من با تو، هیچ سر دشمنی ندارم و اگر سخن درشتی از من میشنوی همه باستاب گفتار توست که چنین با من سخن میگویی آری من پدرت را کشتم اما بدان که شریک من در این کار ادالت بود و تو هم اگر به دیده داد بنگری به من حق میدهی پدرت که این چنین برای او اشک از دیده میباری خواهرت را در پیشگاه خدایان قربانی کرد بیان که اندکی به رنج های من بیاندیشد حال بگو که پدرت برای چه دخترم خواهر تو را قربانی کرد؟ برای مردمان آتن یا منالوس آیا خون دختر من به کام خدایان گواراتر از خون دختران هلم بود؟ یا پدرت مهر پدری از فرزندان خود بریده و به فرزندان منالئوس افکنده بود؟ آیا خواهر در خاک خفتت نیست چون تو میاندیشد من از کرده خود پشیمان نیستم چرا که هیچ فرد فرزانه‌ای چنین عمل وحشتناکی را نمیپذیرد بهتر است پیش از آن که دیگران را گناهکار بنامی در رفتارشان بیاندیشی الکترا از مادرش می‌خواهد حال که تمام سخنانش را گفته او نیز نظر خود را بگوید و مادرش نیز می‌پذیرد الکترا می‌گوید پس این است رای من تو می‌گویی پدرم را کشته ای و این خود کاری سخت وحشتناک است خواه در آن محق بوده ای؟ خواه نه اما بر باور من تو حق چنین کاری را نداشته ای های او که اینک همخوابه توست تو را بدین کار قوی دل کرده است از آرتمیس الهه شکار بپرس که چرا پدرم را در تنگه اولیس متوقف کرد اما حال که به او دسترسی نداریم ماجرا را روایت خواهیم کرد همان گونه که از پدر شنیدم او روزی از بیشه ای از آن آرتمیس میگذشت و بی آنکه که بداند تیری از کمان پراند و غذالی را شکار کرد. آرتمیس خشمگین شد و پدرم و دیگر یونانیان را در دریا نگاه داشت تا جایی که پدرم برخلاف خواست خود خواهرم را قربانی کرد. برای یونانیان نه برای منالئوس و حتی اگر این قربانی برای منالئوس بود تو باز حق کشتن پدرم را نداشتی. تو به کدام قانون پدرم را کشتی؟ اگر تو بر این باور بوده ای که خون باید با خون قصاص شود تو همکنون از همه بیشتر شایسته مردنی و از رو قاتل شوهرت را به جای شوهر گرفتی؟ اگر بگویی این است انتقام من از آگاممنون خود را از گناهت پاک نمی کنی هیچ دیده نشده کسی مرگ دختر را بهانه گناه خود سازد آچه می گویم که این سخنان را چندین بار بر زبان آوردم و تو هر بار مرا سر می خانی. تو دخترت را به کنیزی گرفته ای و زندگی برادرم را گناه من میشماری زیرا بر این گمانی که او تو را روزی از پای خواهد درآورد آری حراس تو آرزوی من است و امیدوارم روزی بیاید و او چنین کند حال مرا بیشرم بنام که اگر چنین باشد دختر راستین تو خواهم بود کلیتیم را برمی آشوبد و پرسان میگوید با این دختر بی شرم که چنین با مادرش درشتی می کند چه باید کرد؟ الکترا پاسخ می آری از سخنان خود پشیمانم اما تو مرا وادار می که چنین بگویم مگر نشیده ای فرومایگی از فرومایگان میآموزند آموزن کلیتیم را بیش از پیش خشمگین می شود و به الکترا نهیب میزند و الکترانیز مادرش را مسئول رفتار او میداند. تا اینکه که کلیتیم به او میگوید در صورت بازگشت ایجستوس بدترین اوقبت ها در انتظار او خواهد بود. الکترا به مادرش میگوید باز دیدی که خشم بر تو چیره شد مگر تو خود نگفتی که آنچه در دل دارم بازگویم؟ کلیتیم به او میگوید دیگر سخنانش را گفته و باید خاموش شود. و هم پاسخ می دهد. هر هرچه می خواهی بکن که دیگر از من صدایی نخواهی شنید. کلیتیم را به ملازم خود می گوید که سبد میویی را به او بدهد تا به پیشگاه الهه ارزانی کند تا از او بخواهد که او را از حراس براهاند و دعای خود را چنین آغاز می کند. ای فیوس، ای الههی که نگهبانمایی هرچند که در میان یاران خود نیستم و نامهرمی در پیش من است، اما تو از زاری من راز مرا می خانی. ای خداوند لیسیه اگر آنچه در خواب دیدم به سود من است آن را برسان و اگر نه به نیکی برگردان. اگر کسانی در اندیشه نقشه انتقام از منند اندیشه هایشان را هم زن و مرا در کنار یاران و فرزندان نیک خواهم در رفاه نگاه دار در این هنگام مربی به پیش آنان می آید و زنان میپرسد که آیا اینجا سرای یسوس ای است و زنان به او می‌گویند آری چنین است و مربی رو به آنها می‌گوید پس این زن نیز همسر اوست زیرا از چهره او شکوهی شاهانه آشکار است و زنان نیز سخن او را تایید می‌کنند سپس مربی رو به کلیتیمنس را می‌کند و به او می‌گوید ای بانو درود مرا بپذیر که خبری خوش از سوی دوستان تو آوردم کلیتیم نسترا میگوید، این خبر را به فال نیک میگیرم، گیرم اما نخست بگو که قاصد کیستی؟ مربی پاسخ می دهد که حامل اخبار مهمی از فانوتیوس اهل فوسیس است. کلیتیم نسترا چیستی خبر را جویا می و مربی پاسخ می اورستس جان هراس، حراس، حیرت و اندوه در جان الکترا در می و به مربی، بانگ برمی آورد. اکنون چه گفتی؟ آه چگونه چنین خبری را تاب آورم که کار من ساخته شد و همه چیز تباه کلیتیم <تصحنت> به مربی میگوید به الکترا توجه نکند و هرچه می داند بر زبان آورد مربی میگوید به همین قصد آمده است و داستان مرگ اورستس را روایت می کند اورستس برای شرکت در مهمترین قسمت جشنهای یونان به دلف رفته بود او نخست در مسابقات دویدن شرکت جست و اندام او همگان را به تحسین واداشت او در این مسابقه و مسابقات دیگر پیروز شد و شور و قوقای مردم به هنگام دویدنش به هوا میرفت و همه او را به یکدیگر نشان میدادند و میگفتند این از پسر آگا ممنون سردار بزرگ یونان تا اینکه بخت در مسابقات عرابرانی از اورستس رویگردان شد در میدان عرابرانی اندکی پس از آغاز مسابقه نظم نخستین میدان جای خود را به هرج و مرج داد و عرابه ها به یکدیگر خورده و سوار و اسب بر هم می‌گلطیدند اورستس که از نخواست در اندیشه حفظ توانش در ابتدای مسابقه بود از این هنگامه رهید و با همه نیروی خود بر اسبانش تا زیانه زد تا از همه پیشی گیرد. شگر دورستس آن بود که به گونه ای انانه را در دورها بکشد تا به اندک فاصله ای از تیرهای دور میدان بپیچد اما با لغزشی کوچک به تیر میدان خورد و از پا رم کرده و خود را از عرابه کندند و نیز در میان مهار از پا گرفتار شد ناگاه آهی جانکاه جای هیاهوی مردم را گرفت پیکرش زیر سم از پا کوبیده شد و هیچ کس را باور نبود که پیکر این مرد جوان از آن آن قهرمان میدان هاست پیکر او را سوزاندند و پیکی خاک سرش را خواهد آورد تا به خاک سپرده شود شنیدن این داستانی سوز از زگر برمیآورد، حال ببینید که بینندگان چسان درد کشیدند زنان میگویند پس آخرین تن از خاندان سلطنتی از این جهان رخت بست کلیتیم را با شنیدن خبر می گوید نمی دانم اکنون باید از دیده اشک ببارم یا لبخند بر چهره نشانم زهی شوربختی که مرگ دلبندی بر زندگیت بیافزاید. مربی به او میگوید که گمان نمی کرده است که او از این خبر اندوهگین شود و او پاسخ می دهد چگونه مادری از مرگ پسر خود خوشحال می شود مربی به او میگوید دریخ که مجدم اندوه به بار آورد و بیموس شد کلیتیمنسترا میگوید نه هرگز چنین نیست هرچند من او را در دامان خود پروردم اما او مرگ پدرش را از چشم من میدید و بر من شورید از دید دیگران آزاد بودم اما در درون در بند حراس از فرزندم گرفتار تو بندهایم را گسستی و مرا جانی دوباره بخشیدی الکترا برای مرگ برادرش مینالد و میگوید این رخداد از داد نبود کلیتیمنسرا میگوید آنچه سزای برادرت بود بر سرش آمد اما اوقبت تو در راه است الکترا از الههی انتقام می که مادرش را کیفر دهد اما مادرش می گوید انتقام پیش از این رای خود را آشکار کرده است الکترا به او می آری از مرگ پسرت ببال بال، اکنون روزگار زبان ما را بسته است کلیتیم به تنه به مربی میگوید اگر توان بستن زبان این دختر را نیز داشتی یک خزانه زر بر مزدت میافزودم مربی در این هنگام از کلیتیم نسرا می میخواهد که اجازه دهد تا مرخص شود اما کلیتیمنسترا از او میخواهد به پاداش خبر با او به کاخ برود و در آنجا از او پذیرایی شود الکترا در این میان با خود میگوید ای مردم پیش بیایید و بنگرید که چگونه مادری در سوگ پسر خود از خوشی میخندد آهی اورستس تو یگان راه رهاندن ما از این بیدادگران بودی و حال ببین که با رفتن چگونه خواهرت را بی پناه در چنگ آنان رها کرده ای نه هیچگاه بر این ننگ سر نمی نهم و آمادم از گرسنگی جان دهم تا همنشین جفا پیشگان گردم بگذار آنانی که در اندیشه مرگ منند زودتر به آرزویشان برسند زنان میگویند آسمان چرا خاموشی و از خشم نمیقری و میکوشند تا الکترا را آرام کنند و الکترا به آنان میگوید اینک امید بیشتر آزارش میدهد تا آرامش کند زنان اما به او میگویند که داستان پادشاهی را در گذشته شنیدند که جان سپرده اما باز بر آمد و به پادشاهی رسیده است الکترا میگوید هر کس که رنج می برد دارد. اندوه که مرا همسخنی نیز نیست و می افساید او را در این درد روز افسون رها کنند. زنان به او می مرگ سرنوشت آدمی است. الکترا پاسخ می دهد آری آدمی می میرد ولی او چگونه مرد؟ با پیکری پاره پاره در زیر سم اسبان در دیاری بیگانه. کسی را نداشت که پیکرش را به خاک بسپارد و برای او بگرید خریستوفمیس خواهر الکترا شادمان به نزد او میآید و به او میگوید حامل خبری است که برای گفتنش سر از پا نمیشناسد. شناسد الکترا ناامید میپرسد کدام خبر است که درمان درد چاره ناپذیرم باشد خریستوفمیس با اطمینان می گوید که اورستس آمده است الکترا می گوید آیا می خواهی با این خبر مرا ریشخند خود کنی؟ یا احیانا دیوانه شده ای خیلی به درستی سخنش سوگند می خورد و الکترا می گوید دریخ که چنین نیست و از او می که بگوید از کجا این خبر را شنیده است خریصوفمیس می گوید که با چشمان خیش دیده است الکترا در حالی که خشمگین و سرگردان است از او می که منظور خود را بیان کند و خریصوفمیس از آنچه دیده است می گوید. چنانکه که میدانی به مزار پدر رفتم و آنجا گلهایی دیدم نصار شده و شیری تازه ریخته شده. به دیدن آن نسارها یکه که خوردم. سرگرداندم تا شاید کسی را بیابم تا اینکه رشتموی دیدم که از آن برادرمان میمانست. زیرا میدانستم که هیچ یک از ما پیش از این آنجا نبوده ایم. ای خواهر، برخیز. که خورشید بخت از سوی ما تابیدن گرفته است الکترا اندوهگین به او میگوید ای خواهر نگون بختم آنچه دیدهی خیال یا خوابی است کریسوفمیس ناباورانه از الکترا دلیل سخنش را میپرسد و الکترا از خبر سوزناکی میگوید که همینک شنیده است مرگ برادرشان کریسوفمیس از او می‌پرسد که چگونه پی برده است و الکترا پاسخ می دهد مردی که از نزدیک مرگ اورستس را دیده است این خبر را آورده است. او همینک در کاخ است و آن پیشکشها را نیز بیگمان کسی به یاد اورستس به مزار پدر نثار کرده است. خریصوفمیس که نمی‌تواند با آنچه دیده است این خبر را باور کند می‌گوید دریخ که شیرینی خبرم به یک بار تلخ شد. الکترا به خواهرش میگوید در اندیشه نقشه نو است که اگر خیلی کریستوف میس از خود دلیلی نشان دهد سرانجام آن پیروزی است و او نیز پاسخ می‌دهد هرچه چه توان دارد به کار میبندد و الکترا از او میخواهد خوب به گفته‌هایش گوش سپارد و میگوید نیک می‌دانی که همه یاران یارانمان از میان رفته و برادرمان جان داده است اینک ما مانده ایم تا بکوشیم ایجسوس را کیفر دهیم دیگر در پی چیستی مگر تو را در سر آرزوی ازدواج نیست مگر نمیدانیم که ایجسوس نمیخواهد از ما فرزندی برایت که کینه او را بجوید جز این راهی نیست میتوانی حق پدر را ادا کنی شوهر برگزینی و در یاد مردم جاودانه شوی حال خواهر رای تو چیست آیا یار من در انجام این اندیشه میگردی؟ زنان از هر دو می خواهند آرام تر سخن بگویند و احتیاط کنند. خریسوفمیس سخن زنان را تایید میکند و به الکترا میگوید ای الکترا در این هم که چگونه چنین خیال خامی در سر داری. مگر نمی دانی تو زنی و از آنان ناتوانتر. مگر نمی بینی هر چه تاله آنان فراز می آید اختر ما به پستی می گراید. من می خوشم اندیشه تو به گوش کسی نرسد. آخر، جاودانگی پس از جان جاندادنی جانسوز به چه کارمان می آید؟ ای خواهر خردمندانه این است که درماندگان بر رای گردن کشان گردن نهند الکترا خشمگین می شود و می گوید پس من این راه را تنها خواهم رفت خریصوفمیس افسوس می خورد و می گوید ای کاش همان روزهایی که پدر کشته شد چنین می کردی الکترا می گوید آن روزها نیست چنین می اندیشیدم. اما وحشت در دلم ریشه دوانده بود و خریصوفمیس آرزو می کند این حال همچنان در الکترا بپاید. الکترا چون روی گردانی را می بیند به او میگوید درنگ او از بزدلی است و خریصوفمیس می گوید هرچه می خواهی بگو اما بیگمان در پایان سپاسگزارم خواهی بود. الکترا می گوید آن روز نخواهد آمد. زودتر برو و هرچه از نهان من دانستی به مادرت بازگو تو زیرکی اما نمی بینی که من بر حقم. میز میگوید خواهرش را دشمن نمی داند و هرچه می گوید از است و می هرچند الکترا حق است اما گاهی راستی سر به باد می دهد و سپس قصد رفتن می کند الکترا نیز در این هنگام می گوید آری برو که من هیچگاه رای تو را نخواهم پذیرفت زیرا در بند وهم خودی و با باخرت بیگانه خواهرش پاسخ میدهد باورت به اندیشه هایت چون پردهای بر چشمانت است زمان در بین ما داوری میکند و میرود زنان میخانند مرغان هوا نیز به پدر و مادر خود نیکی میکنند ولی در اینجا خواهران با همچون بیگانگان سخن میگویند بار درد پدر را الکترا تنها به دوش میکشد و دیگر سر زندگی ندارد. کمتر دیدم که کسی آزادگی را از زندگی در خاری برتری دهد. اورستس و پیلادس با ظرفی مفرقین به پیش آنها میآیند اما کسی نمیشناسدشان. اورستس رو به زنان میپرسد: آیا بیراه نرفته ایم این سرای ایجستوس است؟ زنان تایید می و اورستس ازانان میخواهد که از بینشان کسی به کاخ برود و مأمورده آمدن مهمانان را بدهد. زنان میگویند این خبر را دختری که در اینجاست باید به آنها برساند. اورستس از الکترا میخواهد به ایجستوس بگوید که دو تن از فوسیس آمدند و خاکستر اورستس را آوردند. الکترا از آنان می‌خواهد که ظرف را به دست او بسپارند زیرا میخواهد خاک تن برادرش را به آب دیده تر کند اورستس در حالی که به آرامی از پیلادس می پرسد این دختر سوگوار کیست از او می ظرف را به الکترا بدهد الکترا ظرف را همچون برادرش در آغوش می کشد و با آن سخن می گوید این است برادرم این است جوان برومندی که بدرود گفتمش ای کاش آن روز ها را نمی تا در دیاری بیگانه کار مرگ کردی. بی سوگواری که بر پیکرت بگرید، جامه بر تند کند و به خاک بسپاردد. در روزگاری که مادرت به چشم دشمن می من به جای مادرت بودم و اکنون نیست که او از مرگ سر از پای نمی شناسد و درد مرا به هیچ می گیرد، این منم که از نبود تو می گریم. آه برادرکم، درد و رنج ما یکسان بود و اکنون نیست که به دیار مردگان ره سپردی، آغوش بکشا که من نیز در راهم و میخواهم تا همیشه پیشت بمانم اورستس با شنیدن سوگواری های الکترا آشفته میگردد میخواهد سخنی بگوید اما میترسد الکترا دو دلی اورستس را میفهمد و از او میپرسد از چرو چنین آشفتهای اورستس میگوید آیا الکترا تویی الکترا میگوید آری افسوس که منم و میپرسد آیا جگرت به حال من میسوزد اورستس میگوید چه ناگوار است که مردم به کسی ستم روا دارند و خدایان نیز بر او خشم گیرند الکترا پاسخ میدهد این سخن کفرامیز است اما درباره من راست مینماید اورستس بیشتر میپرسد تا از حال خواهرش آگاهی یابد به او میگوید از زمانی که تو را دیدهام اشک از دیدت روان است الکترا پاسخ میدهد آنچه دیده ای قطره از دریای رنجم. من در خانه پدر در برابر قاتلش کنیزی را میمانم و سختران که مادرم مرا به این کار واداشته است. اورستس به الکترا میگوید دیگر دانسته است چرا او چنین قمگین است. الکترا از حال اورستس میفهمد که این مرد نباید بیگانه باشد و از او میپرسد آیا ممکن است خیشاوند من باشی؟ اورستس به او میگوید می تواند در حضور زنان سخنی به او بگوید الکترا نیز می گوید آنان یار منن و راز مرا آشکار نمی سازند اورستس در این هنگام از الکترا می خواهد که ظرف را به او برگرداند و الکترا ملتمسانه از او می خواهد ظرف را به او بسپارند اورستس چند بار درخواست می کند و الکترا هر بار می گوید که می بر خاک برادر سوکواری کند تا آنکه اورستس میگوید این خاکستر برادرت نیست و در مقابل پرسش الکترا که حیرت زده میپرسد آیا هنوز زنده است اورستس پاسخ میدهد آری من زنده ام اشک شادی در چشمان الکترا حلقه میزند و اورستس میگوید دیگر او را تنها رها نمی کند اما از او می‌خواهد خاموش باشد زیرا ممکن است کسی سخنانش را بشنود. الکترا به او میگوید چگونه خاموش باشم زمانی که گوی خوابهایم را در بیداری می بینم. اکنون باید هر آنچه در دل دارم به تو بازگویم و به مانند بیقراری مدام از اورستس میپرسد تا با شنیدن صدایش بیشتر باور کند که او وهم و گمانش نیست. اورستس از او می خواهد سکوت پیشه کند و نقش شادی را از چهره پاک کند تا نقششان را کسی نفهمد الکترا به او میگوید نگران نباش من باز هم در پیش مادر خواهم گریست اما نه از سوگواری از سور آمدنت اورستس میگوید صدای پایی میشنوم الکترا با لحنی که گویی آنها را نمیشناسد خطاب به اورستس و پیلادس میگوید ای سروران به درون سرا بیایید هرچند پیشکشتان دلخواه نیست اما ناچاریمان را بپذیریم. این صدای گام های مربی است که از درون کاخ میآید مربی می گوید، مگر خیرت را از کف داده اید؟ مرا سپاس گویید که نگذاشتم کسی سخنانتان را بشنود. زودتر به درون کاخ بیایید که جای درنگ نیست اورستس از او میپرسد، آیا اکنون زمان مناسبی است و داستان مرک را باور کردند مربی می گوید، آری همه چیز آماده است و در پاسخ پرسش اورستس که می‌پرسد با شنیدن مرگش چه کردند میگوید پاسخ آن را پس از انجام کار به او خواهد گفت الکترا به مربی اشاره می‌کند و از اورستس می‌پرسد این مرد کیست و اورستس پاسخ می‌دهد او همان است که مرا به او سپردی الکترا او را سپاس می‌گوید که در این هنگام به آنان جانی دوباره داده است مربی به الکترا می گوید برای گفتن سرگذشتمان وقت بسیار است. ولی اینک کلی تیمنس را تنهاست باید دست به کار شد. اورستس و پیلادس وارد کاخ میشوند و الکترا در برابر مجسمه اپولون زانو زده و از او می تا فرجام بدکاران را نشان دهد و نیز به درون کاخ می رود. زنان میخواند. اینک کارزاری خونین در گرفته است و اینک گناهکاران کابوسهایشان را با چشمان باز می بینند زیرا پسر به خونخواهی پدر برآمده است الکترا از کاخ بیرون می‌آید و به زنان می گوید خاموش باشید زیرا همینک کار پایان می گیرد. او می‌خواست خاکستر را دفن کند و ارستس و پیلادس پشت سرش ایستادند و من بیرون آمدم تا مواظب، برگشتن ایجستوس باشم فریاد ناگهانی کلیتیم را سکوت چند لحظه ای را می شکند. در حالی که از پسرش میخواهد به او رحم کند الکترا از پشت در در حالی که صدای ناله های مادرش را میشنود شنبد برمیدارد تو نه به او رحم کردی نه به پدرش و از اورستس می که به او ضربتی دیگر بزند و آرزو می کند که ایجستوس هم به همین بلا دچار شود. زنان میگویند این است فرجام نفرین خدایان و چون دستان خونین اورستس و پیلادس را هنگام خروج از کاخ میبینند میگویند چه کسی می تواند آنان را ملامت کند الکترا از اورستس میپرسد آیا او کشته شد و اورستس پاسخ می دهد آری دیگر آزارش به کسی نخواهد رسید در این هنگام زنان میگویند که ایجستوس را میبینند اورستس به پیرامون سر میکشد تا او را ببیند. الکترا می گوید که او را دیده است که از خم کوچه می گذرد و نمیداند چه چیزی در پیش است. اورستس و پیلادس به درون کاخ می روند و الکترا منتظر ایجستوس میماند. زنان از الکترا میخواهند که با ایجستوس به گرمی رفتار کند تا نفهمد چه پیامدی در کمین اوست. ایجستوس به الکترا می گوید در راه شنیدم که دوتن از پوسیس پیام مرگ اورستس را در مسابقات عرابرانی آوردند. آنان کجا هستند؟ الکترا پاسخی نمی دهد. ایجستوس می خوروشد. چرا خاموشی؟ شگفتا که دیگر زبان بران خود را از نیان بر نمی کشی؟ آیا خبری از برادرت به تو رسیده؟ هرچه چه میدانی بگو. الکترا می گوید. از مرگ برادر آگاه هست. ایجستوس؟ از الکترا سراغ فرستادگان را میگیرد و میگوید آیا به راستی میتواند پیکر بیجان اورستس را ببیند الکترا پاسخ میدهد آری آنان در کاخ هستند و در انتظار تو تا پیکر اورستس را نشانت دهند ایجستوس شادمان میگردد و میگوید در را بکشا و بگذار سادهدلان و کمخردانی که صودای بازگشت اورستس را در سر داشتند با دیدن پیکر فرو افتادهاش از این پس بیچون و چرا از من فرمان برند الکترا با چهره درمانده میگوید: من نیک دانستم که چگونه باید بر رای بزرگان سر نهم درهای کاخ گشوده می شود ایجستوس، اورستس و پیلادس را می بیند که در برابرشان جنازه است و رویش پارچهی کشیده شده است ایجستوس پیش می و در برابر آن زانو می و پس از اندکی سکوت می گوید این استاد خدایان و رو به اورستس می گوید که پرده از جنازه برگیرد تا بر مرده که خیشاونده اوست سوگواری کند و از الکترانیز می خواهد که کلیتیم را صدا کند اورستس می گوید خود پرده از پیکر برگیر کلیتیم نیز همین جاست. ایجستوس پارچه را بر و با دیدن جنازه وحشت زده فقان سر می دهد و پرسان می گوید چه کسی مرا در این دام گرفتار کرده است؟ اورستس پاسخ می دهد چشم بکشا و ببین بیگومان زنده را از مرده خواهی شناخت جستوس می فهمد آن کس که در برابرش است اورستس است و از او می خواهد بگذارد کلمه ای سخن بگوید الکترا به اورستس می گوید مگذار کلمه ای بر زبان آورد زیرا تنها کیفر مرگ با رنجهای دیرین من برابری می کند. ایجستوس به ایجستوس می گوید برخی در اتاقی که پدرم را کشتی بنشین زیرا می خواهم با خونت قتلگاه او را گلگون کنم. ایجستوس از او می خواهد او پیشتر رود و زمانی که با پاسخ منفی اورستس مواجه می شود می پرسد می ترسی نیرنگی به کار برم؟ اورستس پاسخ می دهد نه به گمانم می که از مرگی می اندیشی اما بدان که تابان رنجهای ما قطره قطره خون توست که بر زمین می‌چکد تو نیز سرانجام درد ما را خواهی چشید ایجستوس وارد اتاق می‌شود و اورستس و پیلادس به دنبالش سپس درها بسته می‌شوند زنان می‌خوانند همینک مصائب این خاندان پایان گرفت و همه چیز به سامان شد در قسمت مدعا گفتیم که اوریپید به نگرش سوفستای گرایش داشته تفکری که باورهای یونانیان رو درباره خدایان زیر سوال می برده به عنوان مثال اینکه اعمال خدایان در مورد بشر عادلان است این چیزی بوده که اوریپید اون رو زیر سوال برده و همین موضوع هم باعث شده که اوریپید پیش همسرانه شخصیت محبوبی نباشه اما سوفوکلس فرد متدینی بوده تا اونجایی که کاهن هم میشه در مؤخره این قسمت سعی دارم که این جدال رو در برداشت متفاوت اوریپید و سوفوکلس از الکترا به طور مختصر نشون بدم قبل از هر چیز در روایت اوریپید باید بگم که حوادث کم و بیش مثل روایت سوفوکلسه اما با دو تفاوت که در ادامه همین دو تفاوت خیلی بیشتر به کار ما قراره بیان در بیان اوریپید مادر الکترا دلسوزی مخاطب رو برمیانگیزه و از همون ابتدا با عنوان یک شخصیت منفی نشون داده نمیشه و همینطور در پایان هم مصیبت این خانواده تموم نمیشه و خدایان به کیفر کشتن مادر اورستس رو از الکترا برای همیشه دور میکنند اما همینطور که شنیدید در نسخه سوفوکلس مورستس به الکترا قول میده که برای همیشه پیشش بمونه و از هم جدا نمیشن. حالا چطوری میشه رگه هایی از مجادله بر سر خدایان رو در این دو نمایش نامه پیدا کرد؟ همونطور که در روایت الکترای سوفوکلس شنیدید شخصیت ها باید تسلیم فرمان و تقدیر خدایان باشن و در صورت سرپیچی از فرمان به سختی کیفر میشن. و البته دقت کنید که اینجا فرمان خدایان عادلانه است برای اثبات این موضوع میتونید مجادلات شخصیت‌ها بر سر عادلانه بودن اتفاقات رو به یاد بیارید ماجرا از زمانی شروع شد که آگاممنون آهوی رو به تصادف در دشت آرتیمیس کشت و به خاطر اون مجبور شد برای نجاتش دختر خودش رو یعنی ایفیجنی رو قربانی کنه در نمایشنامه و در خلال مناظره الکترا با مادرش میفهمیم که کار آگام ممنون درست بوده چون تسلیم فرمان خدایان شده و کار مادرش در انتقام غلط بوده چون از فرمان خدایان سرپیچی کرده کشت شدن مادر از طرف فرزندانش هم کار درستی بوده و تکلیف اونها در اجرای کیفر الهی و قصاص خونه پدره همونطور که در پایان نمایشنامه هم شنیدید کنش قهرمانانه الکترا و برادرش موجب رستگاری اونها و پایان یافتن مصائب خاندان میشه. اما در روایت اوریپید با پایانی که براتون تعریف کردم، انگار هیچ سرانجامی برای این چرخه قتل و انتقام نمیشه تصور کرد. و خدایان هم با تصمیماتی که هیچ منطقی نمیتونه توجیهشون کنه انسانها رو به بازی گرفتن و بدتر از اون که هیچ راه فراری هم از اونها وجود نداره. قتل الکترا هم در نسخه اوریپید بیش از اینکه یک تکلیف باشه صرفا ارزای تمایلات درونیه و کنش قهرمانانهی که انجام میده به جای اینکه اون رو به رستگاری برسونه به تباهی فرو می بره. همه اینها نشانه هایی هستند که جدال یونانیان در اون دوره رو برای ما روشنتر می کنن. و دغدغه هایی که در نهایت باعث زایش فلسفه و ظهور کسی مثل سقرات شد از شخصیت الکترا اختباس سینمایی و تلویزیونی متعددی صورت گرفته تا اونجایی که من گشتم معروفترین اونها فیلم الکتراست که در سال 1962 ساخته شده و به زبان یونانی. البته شخصیت الکترا مثل اینکه وارد دنیای مارول هم شده و یک اختباس سینمایی هم از الکترای مارولی ساخته شده همونطور که در مقدمه هم گفتم منبع ما برای خلاصه کتاب الکترا ترجمه محمد سعیدی از انتشارات علمی و فرهنگی بود. برای خوندن نسخه اوریپیت هم میتونید سراغ ترجمه قلام شهبازی از نشر بیتگول برید. داستانهای جالب دیگری که درباره باری الکترا وجود داره رو براتون در شبکه اجتماعی پادکست میذارم که میتونید با آدرس الف پادکست در اینستاگرام، تلگرام و توییتر صفحه پادکست ما رو پیدا کنید و این مطالب رو بخونید. همچنین اگر دوست داشتید از پادکست حمایت مالی کنید، میتونید به درگاه هامی باش و پیپینگ میدنایت کاست برید و این کار رو انجام بدید. خیلی ممنونم از شما که این قسمت رو تا انتها شنیدید. از امیر ممنونم، امیر تهانی و از شکیبا، شکیبا اسدی برای تدوین این اپیزود و اپیزودهای دیگر پادکست. من مهدی هستم. شما قسمت چهاردهم پادکست الف رو در بهمن ماه 1399 شنیدید تا قسمت بعدی این نقش ماند از قلمت یادگار عمر میتنایید کست